هجمه است مکتب اهل بیت. و کردیم قضیه کربلا سه طرف داره یک طرف مردم وقتی هم مردم میگیم یعنی از این عوام مردم تا اون خلیفه مرعونشون یک طرف قضیه خداقا عبدالله الحسین علیه السلام یک طرف قضیه هم خداوند متعال جل و اله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 بگیرم نکته اول اینکه در باب آموزش دین که قدم اول تربیت یاد گرفتن درست دینه اهل بیت خانهنشیم بودن پس نمی توانستن حرف بزنن با مردم بلنگو نداشتن تریبون نداشتند. اطرافیان اهل بیت هم تحت کنترل بودند. عنوان مثال بعد از قضیه صقیفه صحابه پیغمبر اکرم که حقایق را از پیغمبر شنیده بودند به شدت تو مدینه تحت کنترل بودند که نباید حرف بزنید نباید حدیث پیغمبر برای مردم نقل کنید هر کدام از این را هم به جهتی به مسافرت میرفت به سایر شهرها و بلاد می فرستادن هم خلیفه اول داره هم خلیفه دوم علیه مالان الله تهدید میکردن که نشنوم رفتی توی فلان شهر از پیغمبر برای مردم روایت نقل کرده باشید فقط قرآن اونم بدون تفسیر روخانی قرآن رو به مردم یاد بدید تمام نماز روزه یاد بدید تمام توضیح ندید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 ابن عباس آدم ملایی بود شاگرد امیر بود الانم که الانش نمو میکنه کاری ندارم آدم های ترسویی بودن ولی آدم ملایی بود قدیمام استاندار مثل الان نبود استاندارا خودشون منبر میرفتن خودشون نماز جماعت مخوندن خودشون نماز جمعه مخوندن کاری خودشون قضاوت میکردن ماه رمضان شد سی شب تو مسجد جامع بسره برای مردم سخنرانی کرد منبر رف ابن عباس شب آخر ماه دیده شد معلوم شد فردا عید فتره است یکی دو کلمه از احکام فردا عید فطر بگیم گفت ایان ناس ماه دیده شد فردا قبل از ظهر آخر جو صدقه تاسوم کوم که هم سنی ها نوشتند زکات بذارید کنار فردا پرداسو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 تو شهرهای مهم آدم ملا زیاده دستگاه خلافتم برای اونجا بیشتر اهمیت میداد. منبری های خوب میفرستاد. چه شده بود که در بسره به اون بزرگی اون هم بعد از 25 سال سه خلیفه اول مثلا شرق و غد فتوحات و, و اسلام رو گسترش دادن. مردم شهر بسرتون واجبه معکدی به نام زکات فطره هنوز به گوششون نخورده. کانن ناس لای علمون.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 فهم شیعه چقدر دین تو بلدی، چقدر اصول و بلدی، چقدر فروع و بلدی، چقدر روایت بلدی، چقدر قرآن بلدی، چقدر از امام حسین مطلب بلدی، چقدر از امیرالمؤمنین علیه السلام مطلب بلدی، اینه اسلحه شیعه است الان هی بگو من سرباز امام زمانم، سربازی که اسلحه نداشته باشه دشمن اونو به راحتی شکست میده.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 بعد 25 سال که امیر به خلافت ظاهری رسید اول نماز جماعت و مردم پشت امیر امیرالمومنین و خوندن تو مسجد نبوی در مدینه نماز که تاهم شد امار ام گفت بعد 25 سال تازه یه نماز مثل نماز پیغمبر خوندیم گفتن چی میگی؟ که آقا پیغمبر از سجده اول که قلن میشد مینشست یه استراحتی میکرد از الله ربی و عطوق و میگفت دوباره اکبر می دوباره میگو به می سجده دوم این ستای مل اون اینو از بین برده بودن الان هم همینطوره از سجده دوم هم بلنمشن یه راست میرم بالا برای رکعت بعد بعد 25 سال یه نماز شبیه نماز پیغمبر خوندی خب این وضعیت اطلاعات دینی مردم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 در قرآن و روایات که مراجعه می کنیم اینما الله من عباد العلمان هل یستو لذین یعلمون و لا یعلمان میگه مردم الگوتون علما باشه الان من از شما به میفرمایید شیخ صدوق شیخ توسی علامه مجلسی رزوان الله علیه مجمعی زمان امام حسین از مردم می اینجوری می الگوتون کیه مردم یک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 این ابوهت خانوادگی این منزلت خانوادگی رسیده بود به پسرش عمر سعد باورتون میشه زمانی که ما موسیم رو شهید کردن الگوی جوانهای مملکت عمر سعد بود چرا؟ چون میگفتن یادگار همون سهد وقت قاسه خودشم پهلوانه خودشم اصلا به, دا... به نظر من دلیل اینکه از این همه فرمانده عمر و فرستادن به کربلا شد فرمانده کل لشکر ابن زیاد تو کربلا عمر سعد بود پهلوانتر از عمر تو کوفه زیاد بود قوی‌ترم تو کوفه زیاد بود چرا عمر سعد انتخاب کردن برای که مردم برای عمر سعد و برای باباش الگو به چشم الگو نگاه میکردن معلوم بشن. دور او بیشتر جمع شدن او رو بیشتر علاقه داشتن تا اسم او و باباش میآمد مردم میگفتن بریم آدم مهمیه بریم مام سربازش بشیم تو این فضای امام حسین تنها میماند عزیزان تو فضایی که الگو تقوا و علم نیست الگو عمر سعد و پدرشه سید وشهدا تنها میماند یه مثال دیگه براتون بزنم فاتح شام خالد ابن ولید ملعونه اما نمیدونی مردم چقدر میپرستیدنش میگفتن گفتن رفت سمت روم مرزهای روم رو فت کرد کشور اسلامی را به مرزهای روم رسان حالا مرده پسرش عبدالرحمن ابن خالد است دو جامعه چرا میگم پسر خالد ها اینقدر محبوبیت پیدا کرد اینقدر این پسر موقعیت پیدا کرد شهرت پیدا کرد معاویه ازش ترسید گوه اگر همینجوری بماند فردا جلو منم وای مثل رقیب من میشه معاویه مسمومش کرد میدون یکی از تاکتیک های معاویه برای تسبیت قدرت خودش تمام رقبای تراز اول و از بین بود سعد نوبادر از بین برد، سعد وقاص را از بین برد، پسر ابوبک را از بین برد که اینم میگه بابام ابوبک بوده برای ما رقیب میشه. یکی از اون افرادی که از بین برد پسر خالد ابن ولیده. دقیقاً به خاطر اینکه مردم به این خالد ابن ولید احترام میزشدن. پسرش پسرشم برای مردم شده بود، الگو زنده میماند، خطر داشت، معاویه گفت مسمومش کن.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 و پدر ده برابر کرد موقعیت مقتل الگوها شدن این تمام حسین تنها می دوم قسمت از الگوها ثروتمندان و پولدارا من خیلی قصه می کورم یادتون میاد اونایی که میان سالی همین هفتش ده پونده سال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 چون مراکز سروت رو اینا سال هاست چنگ انداختن معاوی از اینا بود همه خودیا رو گذاشت عثمان از اینا بود همه رو خودیا رو گذاشت ثومین قشره الگوهای مردم شدن فرزندان خلفا نمیدونید چه احترامی داشتن پیش مردم این فرزند هیچی نفهم خلیفه دوم عبدالله بن عمر برای مردم شده بود بوت نه یک ذره شجاعتی نه یک ذره غیرتی نه یک ذره سابقه در اسلام نه یک نفر جنگی جهادی آخر. برای چی چون پسر عمره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 او در شام من دورم نمیتوانم برم. چه کنم؟ برم عوض او با استاندارش بیعت کنم. موقع مرگ کافر نمیرم. مرگ جاهلی نمیرم. بلند شدم دربار بار یوسف و استاندار. گو او اومدم برای بیعت عوض خلیفه با تو. اونم رو تف نشسته بود پا شده کرد کرد. با پام بیعت. کسی که با امیرالمؤمنین بیعت نکنه بره با پای جاجب ابن یوسف بیعت بکنه یه الگوی مردم بودن این امام حسین چقدر مظلوم میشه تو این جمع که الگوهاشون اینا باشن مردم چجوری تربیت میشن ایهم از جهت الگوها سومین رکنی که تو تربیت مؤثر است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 بنابراین مردم میرن سمت یزید مردم دنیا هر کجا باشه دنیا طلبی میره در همان خانه استاندارا رو کی نسب میکنه یزید المال رو کی تقسیم میکنه یزید شهرت دستکیه تبلیغات دستکیه مسجد دستکیه محراب دستکیه امام جماعتها رو کی انتصال منصوب میکنه همه رو دستگاه خلافت بنیومیه تو در خانه حسین علی چه خبره هیچی فقط آخرت مردمم که آخرت نمیخوان یاد نگرفتن آموزش ندیدن جوان شما تو ماه رمضان تو سایر مواقف تو عدیتون دستاتون میبرید درگاه الهی معرف. و هر به ما اینجوری یاد دادن اینجوری دعا کنید خدایا الله تجعل دنیا اکبر همنا خدایا دنیا را همه غم اصلی ما قرار نده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 نکنه تمام 24 ساعته اون برنامه‌ریزی میکنیم فقط برای گل زدن دختر مردم فقط برای پول بیشتر در آوردن فقط برای معامله کلام تر کردن فقط برای از معاونت به ریاست رسیدن این شد بدبختی مسلمین زمان سیدو شهدا مردم اکبر همشون هم مقام اصلیشون شد دنیا دنیا دست بنی بنیامیه هست. تعجب نداره که آقا حلم ناصر سید و بی بیمشتری بود. میشه. خیلی هم راحت میشه من براتون دو تا مثال بزنم. کوفه مرکز تشیعه. اون زمان. مرکز خلافت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و السلام بوده مردم کوفه مثل بقیه نبودن دیده بودن آقا رو عظمتش و اعجازش و علمش و شخصیتش خیلی خیلی باید بالا می آمدن اما وقتی دنیا زده باشی این که حضرت مسلم رو تنها گذاشتن بعدش هم گروه گروه آمدن کربلا فردا چندومی محرم آقا پنجم محرمه تاریخ داره تو پنجمه محرم چهار هزار نفر کوفی به فرماندهی حسین بن نومیر وارد کربلا شده دیروز چندم محرم بوده سه تاریخ نوشته سوم محرم چهار هزار کوفی به فرماندهی عمر سد وارد کربلا شده هر روز چهار هزار پنج هزار شیش هزار بعدن که آقا رو به شهادت رسوندن برگشتن کوفه سرزنش ها شروع شد مذمت شروع شد نامردا چرا رفتی؟ جواب اصلیشون رو ببینید شما خودشون نوشتن باز تاریخ خودشون جواب عمده مردم کوفه این بود خفنا انل اتا ترسیدیم اون پول که ابن زیاد وعده داده بود به ما نرسه به خاطر پول رفتیم به خاطر عطایا رفتیم. به خاطر دنیا رفتیم. چون ابن زیاد رفت بالای منبر همچون امروزی که گذاشت. هم دستور قتل سید و شهدار که از شرعه قاضی گرفته بود بالا منبر کند. هم وعده پاداش. مردم برید که خزانه در اختیار شماست. شروع شد. صد نفر هزار نفر جمع.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 یه دفعه من آخون بیام از شما دعوت کن بیاد به کمک امام حسین یه دفعه خود آقا بیاد از شما دعوت کن اثر خیلی فرق میکن او کلام امامه او شخص امامه خجالت بیشتر میکشید تحول بیشتر میپذیرید یه دفعه من دم در وحسن بگم آقا بفرمایید مجلس عزا. یه وقت ببینید که آقا قمر بنی میستاده میگه به فرماید خیلی آقا از چند نفر خودش دعوت کرده به یاری یکی شمین عبیدالله رو جوفی. چی گفت؟ با همین میشه مردم اون زمان را شناخت گفت آقا یک عصبی دارم. تیز تک. بخوایی هر کس رو تعقیب کنی بهش میرسی. از دست هر کس هم فرار کنی دست عهدی به تو نمیرسه. آقا خودم نمیتونم بیام. این اسبو و تقدیم میکنم. رنگ سید و عوض شد. فرمود پسر علیم. من تو میدان بابام فراری رو تعقیب نمیکرد که منم بخوام تعقیب کنم به اسب تیزتک تو نیاز داشته باشم بابام تو میدان فرار نمیکرد که منم بخوام فرار کنم که به اسب تو نیاز داشته باشم بدبخ به خودت به کمکت نیاز داشتم یه اعترافی کرد راستشو کمت گفت آقا زن و بچه هم کوفن من بیام خدمت شما زن و بچهم هم میکنه ابن زیاد آقا املاکم باغاتم تو کوفس اونا را تصرف میکنه خونم آتیش میزنه من هنوز از دنیا نتونستم دل بکنم نیام دنیا آدم را زمینگیر میکن بماند بقیه ارزم تا کجا زمین گیر میکنه تا کجا بدبخ میکنه فقط با سید و شهدات جنگیدن نه با خدا این, قدر این دنیا اینا رو پست کرد به شیش ماه هم رحم نکردن با مرد جنگیدن نه به دختر سه سالم رحم نکرد اینا مسلمان بودن آی مردم نماز خان بوده اما وقتی مسلمان نماز خان اینقدر پست شد وقتی از معارف دینش بلد نبود، وقتی تربیتش اینجور آلوده بود، آخرش به اینجا میرسه. خدایا به خاطر خون رگهای عبا عبدالله لسین به داد جوانای ما، نسل ما برس. خدایا نکنه ما یه روزی از دین در بریم، یه روزی از این تربیت ها. رنگ بگیریم یه روزی امام زمانمون رو ما دست رد بزنیم که امام زمان با مال من نمتونم یارید کنم نباشیم اینجوری اما همه این مسیبت ها روزمون بخوانم بردوش زینب کبراست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 هر دو پسرش رو طلبید به موی هر دو پسر شانه کشید آورد خدمت با عبدالله حسین. این دو تن هست به دوران سمرم حسین دارو ندارم این دو بچه هست این دو تن هست به دوران سمرم هدیه بفرست به سوی پدرم حسین جان اینا رو بفرست خدمت پدرم امیرالمؤمنین بگو بگوینام فدایان تو شده دیگه سراغشونم نگرفت برا رفتن سر نعش علی اکبر زینب دوان دوان رفت هر شهید رو سید میآورد شهدام میاور زینب دوان دوان میومد. علی که آمد خواهرم تو این بدن رو بگیر من یواش یواش رو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 تو همچه فضایی عبدالله ابن حسن از خیمه ها بلند شد دیگه نمیتونم صدای حضم ناصر عموم و بشنبم و نرم. قیقت بنی حاشمه. ده سالش بود جهادم براش واجب نبود از خیمه که فرار کرد زینب کبرا به دنبال این که هرچی این رو بگیره نتوانست. هرچی صداش کرد عبدالله نرو پسر برادرم نرو نشد لذا زینب مجبور شد پشت زر این بچه آمد تا جایی که قتلگاه رو زینب دید جزء معدود شهده هاییست که زینب شهادتشو از نزدیک دیده بقیه رو نمیدیدن تو چادر بودن تو خیمگاه بوده دیگه تا جایی که میشد بیاد آمد ولی استاد اما عبدالله آمد کنار گودی قتلگاه لشکر کشیدن کنار یال ای کوچولو کچولو نه زره داره نه شمشیر داره، این برای چی آمده کشیدن کنار راه باز کردن خودشو تو گودال انداخت تو بغل اما همینجوری امو امو چرا به این وضع افتادی امو بلندشو بریم میتن امو بلندشو بریم خیلی مقام آمام داره نوازه میکنه این که طفل خیلی مصیبت رو عمقش رو آقا نمیخواد به این تفل بیان کنه، ای وقت بحر ابن کب آمد که کار آقا رو تمام کنه با شمشیر. این تفل دید شمشیر داره میاد رو سر امو دستشو جلو ده وی لکه یبن الخبیسه تقتل همی میخوای امو بکشی شمشیر فرود آمد و دست این تفل برید دستو از پوستش آفیزان شد تو این وضعیت که افتاد خود شو رو آقوش آمو یا اما به دادم برس کاری از دست زید روش و عدابر نمی آمد گرفت بغلش دلداریش میداد. دلداری چیه؟ عبدالله هم یادگاره حسن هم چند ثانیه سب کن به بابات ملحق میشی چیزی تا شهادت باقی نمونده آقا جون هر مله زانوش رو زمین گذاشت فقط نگید هر مل علی اصغر را زبه او من الوزونه لالوزونا نه دقیقا همون کار را به عبدالله ابن الحسن دقیقا تیر به گلوی عبدالله ابن الحسن دقیقا عبارت مقاتل زبهه یعنی عبدالله بن حسن رو زب کرد دیگه زینب طاقت نیاورد. داشت سحنه رو میدید دست رو مهجرش گذاشت به سمت قتلگاه و ابنه و خیاب سر و جان و عبدالله یاله تنی الموت اعدمن الحیات ای کاش امت مرده بودین این حال تو نمیدید عبدالله ما گذار کنم همه شهده رو سيد و خودش برد جلوی خیمه ها علی ازخه رو خودش برد تحویل زینت ده. علی اکبر هم عبار و جوان های بنی هاشم گرفتم بردن قاسم رو چسبونده بود به بدنش خود شما به من بگید عبدالله رو کی برد میتونید تصور کنید از این به بچه قد برا زینام و گریه کنید بولا لحظه ای که به هم به مظلومیت برادرش نمیتونی از جا بولنجی حسینم حسینم دلتم نمیخواد این جا اینجا بمانت بمانت حسین تکیتی کش میکنه. خدایا اون لحظه از تران زینم ولی یک الفرج عجل امام المظلوم الفرج عجل سیدن الغریب المهموم الفرج